چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟ نویسنده دکتر اسپنسر جانسون چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟ شیبه حیرت انگیز برای برخورد با تغییر در کار و زندگی؟ چه کسی پنیر مرا جابجه کرد حکایت تمثیلی ساده ای است که پرده از حقایق عمیقی در رابطه با تغییرات در کار و زندگی برمیداره این داستان ماجرای با مزه و آموزنده چهار شخصیتیه که در یک هزار تو زندگی می کنند و در جستجوی پنیری هستند تا ها را سیر و سعادتمند کنه شخصیت های داستان دموش هستند به نام های اسنیف یا فینفین و اسکاری یا تکاپو که رفتارهای شبیه بیادمها دارند و دو آدم کوچولو به اسم هم یا این پا و هاو یا اون پا که همقدر و قواری موشا هستند پنیر استهاره از چیزی است که شما در زندگی به دنبال اون هستید خواه شغلی خوب باشه یا رابطه یا شغانه. پول ثروت، سلامتی و یا آرامش روحی هزار تو جاییست که شما در آن به دنبال خواستهای خود می گردید جایی که در اون کار می کنید. خانواده یا ای که در اون زندگی می کنید. در این داستان شخصیت ها با تغییر غیر منتظری مواجه میشن در نهایت یکی از اونها موفق میشه با این تغییر کنار بیاد و اون چرا که از تجربیات خودش آموخته روی دیوارهای هزارتو بنویسه وقتی بیایید و دست نوشته بر روی دیوار رو ببینید درخواهید یافت که چگونه باید با تغییرات کنار بیاید و در نتیجه بتوانید از فشار روحی کمتر و موفقیت بیشتر در کار زندگی خود برخوردار شوید این داستان برای همه سنین نوشته شده و با اینکه که خوندن آن شاید یک ساعت هم زمان نبره اما نگریشی که در ورای اون نهفته است، شاید در تمام عمر بر جای بمونه. بخشهایی از وجود همه ما ساده و پیچیده، چهار شخصیت خیالی که در این داستان معرفی شدند، عبارتند از موشها، فینفین و تکاپو و آدم کوچولوها، این پا و اون پا، بیانگر ابعاد ساده و پیچیده خود ما هستند. صرف نظر از سن جنس نژاد یا ملیت ما ممکنه نگاهی مثل فینفین فین عمل کنیم که خیلی زود نشانه های تغییر و بو میکشه یا تکاپو که به سرعت وارد عمل میشه یا این پا که تغییر و پس میزنه و در برابر اون مییسته و مقاومت میکنه و میترسه که این تغییر نتیجه بدتری داشته باشه یا اون پا که وقتی میبینه تغییر میتونه نتیجه بهتری برای اون داشته باشه میآموزه که خودشو با شرایط زمان وفق بده سرفه نظر از این که ما از کدام یک از ابعاد وجودی خود استفاده می کنیم، یک چیز در بین همه ما مشترکه. اینکه ما باید راه خودمون در این هزارتو پیدا کنیم و در زمانهای تغییر موفق و سربلند باشیم. در یک روزه یک یکشنبه آفتابی در شیکاگو، چند هم کلاسی قدیمی که در دوران مدرسه دوستان خوبی برای هم بودند و شب قبل هم پس از مدت ها دوباره در مدرسه گرده هم جمع شده بودند. برای نهار در کنار هم حضور یافتند اونا میخواستن از اتفاقاتی که داشت در زندگی هریک از اونها رخ میداد با خبر بشن پس از کمی شوخی و خنده و غذای خوب گفتگوی جالب اونا آغاز شد آنجلا که اون وقتا یکی از محبوب ترین بچه های کلاس بود گفت زندگی واقعا با اون چیزی که من تو دوران مدرسه فکر میکردم خیلی فرق داره خیلی چیزا عوض شده همین نظر رو داشت. آره واقعا. اونا میدونستان چون وارد حرفه خانوادگی خود شده شرکتی که هنوز هم عملکرد خوب و موفقی داشت و تا جایی که اونها به خاطر داشتند یکی از مشاغل مهم شهر اونها بود بنابراین از اینکه اونا نگران می دیدن تعجب میکردند اما حالا توجه کردین که چرا ما نمیخوایم عوض بشیم در حالی که همین چیز داره تغییر میکنه به نظر من چون از تغییر میترسیم در برابرش مقاومت میکنیم کارلوس تو کاپیتان تیم فوتبال بودی اصلا فکر نمی کردم یه روز از ترس حرف بزنی اونها با اینکه هر کدوم به راهی رفته بودند از کار در خانه گرفته تا مدیریت شرکت ولی از اینکه می‌دیدند هنوز احساساتشون شبیه همه همگی به خنده افتاده بود <تصفيق> همه تلاش میکردند تا از عهده تغییرات غیرمنتظره منتظری که داشت در این سالها در زندگی اونها رخ میداد بر بیان و بیشتر اونها اذعان میکردند که راه خوبی برای کنترل این شرایط سراغ ندارد. من هم از تغییر می ترسیدم وقتی که تغییر بزرگ توی کار ما به وجود اومد نمیدونستیم باید چیکار کنیم بنابراین نتونستیم خودمون رو وفق بدیم و در نتیجه کارمون رو از دست دادیم تا اینکه یه داستان کوتاه و بامزه شنیدم که همه چیز رو عوض کرد چه جوری خب این داستان نوع نگرش من به تغییر رو عوض کرد اول فکر می کردم تغییر یعنی از دست دادن اما حالا اونو فرصتی برای به دست آوردن میدونم در زم به من یاد داد که چطور باهاش کنار بیام. بعد از اون همه چیز به سرعت پیشرفت کرد و بهتر شد، هم توی کار و هم توی زندگی. اولش از سادگی بیش از حد این داستان حالم گرفته شد چون یه چیزی شبیه اون قصه هایی بود که ما توی مدرسه واسه هم تعریف میکردیم. بعد که فهمیدم من هیچ وقت متوجه نبودم چه چیزای واضعی توی این تغییرات رخ میده و چه کارهای موثری باید انجام میدادم، خیلی از خودم عصبانی شدم. وقتی فهمیدم که چهار شخصیت این داستان نماینده ابعاد مختلف خود من هستن تصمیم خودم رو گرفتم که مثل کدوم یکی‌شون عمل کنم و اینطوری شد که متحول شدم بعدش این داستان رو برای بقیه کارمندهای شرکتمونم تعریف کردم و اونا هم به بقیه گفتن و خیلی زود کاربارمون خوب شد چون اکثر ما خودمون رو با شرایط بفقت دادیم و وضعمون بهتر شد و خیلی از مثل خودم میگفتند که این داستان توی زندگی شخصیشونم خیلی کمکشون کرد با این وجود کسانی هم بودن که میگفتن این داستان به دردشون نخورده. اونها یا اینکه درس‌ها رو بلد بودن و باهاش زندگی کرده بودن یا اینکه اگه بخوایم ساده تر بگیم فکر میکردن که همه چیزو میدونن و به همین خاطرم نمیخواستن یاد بگیرن. اونا نمیتونستن بفهمن که چرا این داستان این همه به درد بقیه خورده. وقتی یکی از مدیرای ارشد ما که براش مشکل بود خودش رو وقف بده گفت خوندن این داستان فقط وقت تلف کردنه بقیه بهش خندیدن و گفتن که اون کدوم یکی از شخصیت‌های داستانه یعنی همون که چیز جدیدی یاد نگرفت و متحول نشد اسم داستان چیه اسمش اینه کی پنیر منو برداشت فکر کنم ازش خوشم بیاد داستانو برامون تعریف میکنی؟ شاید بشه یه چیزی ازش درآوردی حتما خوشحال میشم زیاد وقت نمیگیره. مدتها مدت ها پیش در سرزمینی دورده است چهار شخصیت کوچیک داستان ما زندگی می که در میان پیچ و خمهای هزار تو در جستجوی پنیر می تا هم سیرشن و هم خوشبخت دو نفر از اونها موشهایی بودن به اسم فینفین و تکابو و دو آدم کوچولو که به موش موشها کچیک بودند اما ظاهر و رفتارشون مثل آدمهای امروزی بود اسم این دو نفر این پا و اون پا بود این چهار نفر به خاطر جسته های ریزی که داشتن کارهاشون جلب توجه نمی کرد. اما اگه با دقت نگاه می کردید آورترین چیزها رو می تونستید ببینید این موشها و آدم کوچولوها هر روز در این هزار تو وقت خود رو صرف پیدا کردن پنیر مورد علاقه خودشون می کردن. موشها فینفینو فینفین و تکاپو با مغزهای های و قرایزی خوب دنبال پنیر سفت و ترد میگشتند، پنیری که باب دندون بیشتر موشاست آدم کچوده قصه این پا و اون پا با اون مغز پیچیده و مملو از باورها و احساسات فراوون خودشون در پی نوع دیگه ای از پنیر بودند. نوعی پنیر که به اعتقاد اونها احساس خوشبختی و موفقیت براشون برمغان می آورد. این موشاو آدم کوچولوها با وجود تمام تفاوتهایی که با هم داشتن یه چیزایشون مشترک بود. اونها هر روز صبح لباس و کفشای ورزشی خود را میپوشیدن، از خانه‌های کوچیک خودشون بیرون می اومدن و با سرعت زیاد در هزارتو دنبال پنیر مورد علاقه خودشون میگشتند. این هزارتو مارپیچی متشکل از دهلیزها و ها بود که در برخی از اونها پنیرهای خوشمزه وجود داشت. اما در این میون کنچ تاریک و کوچه های بونبستی هم بودند که راه به جایی نمی بردن هزارتو جایی بود که به می شد در اون گم شد با این حال برای کسایی که راه خودشون رو پیدا می کردند، این هزارتو رازهایی در خود داشت که باعث می شد اونها از یک زندگی بهتر لذت ببرند. موشها، فینفین و تکاپو از شیوه سادهی آزمون و خطا برای پیدا کردن پنیر استفاده می کردن. اونها به یکی از دهلیز دهلیزها میدویدند و وقتی اون رو خالی میدیدند برمیگشتند و به سرعت به دهلیز دیگه‌ای می‌رفتند. دهلیزهایی رو که پنیری درون نبود به خاطر می‌سپردند و زود به نقاط جدید می‌رفتند. فینفین با شامه فوق‌العاده خودش محل تقریبی پنیر رو پیدا می‌کرد و تکاپو به سرعت پیش می‌رفت. اونها گونه که انتظار می‌رفت گم می‌شدند، راه را اشتباه می‌رفتند و اغلب به بن‌بست می‌رسیدند. اما پس از مدتی راه خودشون رو پیدا می‌کردند. آدم کوچولوها این پا و اون پا نیز، همانند موشها از توانایی فکر کردن و آموختن از تجربیات گذشته بهره می بردن. با این وجود، برای یافتن شیوه های دقیق و ماهرانه پیدا کردن پنیر، متکی به مغزهای پیچیده خود بودند. گاه یوقات کارشون خوب پیش می رفت. اما در مواردی هم باورها و احساسات بشریشون بر اونها چیره می شد و نمی گذاشت شرایط رو اونطور که باید ببینن. در چنین شرایطی زندگی در هزارتو بسیار سخت و طاقت فرسا میشد. با تمام اینها فینفین، فین تکاپو این پا و همه همگی به شیوه خود اون چیزی رو که به دنبالش بودن به دست آوردن هر یکی از اونها اون نوع پنیریو که میخواستن یک روز در ته یکی از دهلیس ها در سومین جایگاه پنیری پیدا کردند پس از این اتفاق هر روز صبح موشها و آدم کوچولوها با نشاط و با به سمت سومین جایگاه پنیری راه می‌افتادند. طولی نکشید که این کار هر روزه همه اونها شد. فینفین و تکاپو هر روز صبح زود از خواب بیدار می و به سرعت در هزار تو و همیشه هم همون یک مسیر رو دنبال می وقتی به مقصد خود می رسیدن کفش های ورزششون رو بارم. بارم. بارم. بارم. بارم. بارم. بارم. در می آوردن. اونها رو محکم به هم می و از گردن خودشون آویزون می کردن. اینطوری اگر به اونها نیاز پیدا می کردن، زود می توانستن اونها رو دوباره به کنن و بعد از پنیر خودشون لذت می بردن. در ابتدا این پا و اون پا هم هر روز صبح به سرعت به سمت سومین جایگاه پنیری می و از تک پنیرهای تازه و خوشمزهی که انتظارشون رو می کشید لذت می بردن. اما پس از مدتی آدم کوچولوها ها روال متفاوتی رو از سر گرفتند. اونها هر روز صبح کمی دیرتر از خواب بیدار می شدن، کمی آرومتر لباس می پوشیدن و به آرومی به سمت سومین جایگاه پنیری حرکت می کردن. چون میدونستند که حالا از کجا میتونن پنیر پیدا کنن و چگونه خود رو به اونجا برسونن. اونها اصلا نمیدونستند که پنیر از کجا میاد یا اینکه چه کسی اونها رو اونجا میگذاره. اونها فقط این رو میدونستند که پنیر اونجاست. هر روز صبح به محض اینکه این پا و اون پا به سومین جایگاه پنیری میرسیدن، اونجا مستقر میشدن و احساس راحتی میکردن. لباسهای ورزشیشون رو از تن به در میکردن، کفششون رو در میآوردن و دمپهای میپوشیدن. حالا که به پنیر رسیده بودن خیلی احساس آرامش داشتند این پا می گفت علی انقدر پنیر اینجا هست که واسه تمام عمرمون کافیه آدم کوچولوها احساس خوشبختی و کامیابی میکردند و فکر میکردند حالا دیگه هیچ مشکلی تهدیدشون نمیکنه. طوری نکشید که این پا و اون پا نسبت به پنیرایی که در سومین جایگاه پنیری بود احساس مالکیت پیدا کردند این آزوغه پنیر اونقدر زیاد بود که اونها خونه و زندگی خودشون رو جمع کردن و به اونجا آمدن تا به پنیر نزدیک باشند و در اطراف اون یک زندگی اجتماعی تشکیل دادن این پا و اون پا برای اینکه احساس راحتی بیشتری بکنن دیوارها رو با جملاتی تزئین کردن و حتی تصاویری از پنیر در اطراف اونها نقاشی کردند که لبخند رو به لباشون میآورد روی یکی از تصاویر این جمله نوشته شده بود داشتن پنیر یعنی خوشبختی این پا و اون پا، گاهی اوقات دوستانشون رو به اونجا می آوردن تا اندوخته پنیر اونها رو در سومین جایگاه پنیری ببینن با افتخار به اون اشاره می و می پنیر خیلی خوبیه نه؟ گاهی اوقات اون رو با دوستانشون تقسیم می و بعضی وقتا هم نه ما لیاقت این پنیر رو داریم خیلی زحمت کشیدیم تا تونستیم پیداش کنیم پکی پنیر تازه برمیداشت و می و بعد مثل بیشتر اوقات به خواب می رفت. آدم کچولوها هر شب با باری پر از پنیر به خونه می و هر روز صبح با اطمینان فراوون برمیگشتند تا پنیر بیشتری پیدا کنند. این روند تا مدتها ادامه داشت. این اعتماد به نفس این پا و اون پا پس از مدتی به غرور موفقیت تبدیل شد. طولی نکشید که اونها اونقدر بیخیال شدن که متوجه نبودن اطرافشون چه اتفاقاتی رخ میده زمان میگذشت و فینفین و تکاپو همچنان روال معمول خودشون رو ادامه میدادن اونها هر روز صبح زود به اونجا میرسیدن، بومی کشیدن، زمین رو میکندن و به سرعت در اطراف جایگاه پنیر گشت میزدن تا ببینن که آیا اونجا نسبت به روز قبل تغییری کرده یا نه بعد مینشستن و پنیرها رو گاز می یک روز صبح، اونها به جایگاه پنیر اون و بروت رو از پنیر همه، نیست، اونها اصلا همه، نکردند. از اونجا که فینفین و تکاپو متوجه شده بودند که آزوغه پنیرشون داره هر روز کمتر و کمتر میشه، خودشون رو برای این اتفاق حتمی آماده کرده بودند و به طور غریزی میدونستن که چه باید بکنن. نگاهی به همدیگه دیگه انداختن. کفش‌های ورزشیشون رو که به هم گره زده بودند و با آسودگی دور گردن خود انداخته بودند باز کردند، اونها رو به پا کردند و بند اونها رو محکم بستند. موشها تحلیل چندانی از اتفاقات نداشتند. برای موشا هم مسئله و هم پاسخ اون بسیار ساده بود. شرایط در جایگاه پنیر تغییر کرده بود، بنابراین فینفین و تکاپو هم تصمیم گرفتن تغییر کنند. هر دو نگاهی به داخل هزارتو انداختند. بعد فینفین بینی‌ش رو بالا آورد، بو کشید و سرش رو برای تکاپو تکون داد. او هم ناگهان در میان هزارتو شروع به دویدن کرد و فینفین هم با تمام سرعت به دنبال اون به راه افتاد. اونها خیلی زود جستجوهاشون رو برای پیدا کردن پنیر جدید آغاز کردند. اونها خیلی زود جستجوهاشون رو برای پیدا کردن پنیر جدید آغاز کردند. این پا و اون پا هم همون روز بعد از موشها به جایگاه پنیر رسیدند. اونها؟ به تغییرات کوچکی که هر روز رخ داده بود، توجهی نکرده بودند. بنابراین مطمئن بودند که پنیر رو در اونجا خواهند یافت. اونها آمادگی اون چیزی رو که اونجا می دیدن، نداشتند. این پا فریاد زد. چی پنیر نیست، پنیر نیست، وای پنیر نیست کی پنیر منو برده؟ سرانجام دستاشو به کمر گرفت. صورتش سرخ شد. و با بلندترین صدایی که میشد داد زد. او اینو سفانه نیست. اون پا فقط سرش رو به نشانه ناباوری تکون داد. او هم روی پیدا کردن پنیر در این جایگاه پنیر حساب کرده بود. از تعجب خشکش زده بود. آمادگی این اتفاق نداشت. این پا داشت با فریاد چیزی میگفت اما اون پا نمیخواست اونو بشنوه. او نمیخواست با اون چیزی که دیده بود کنار بیاد تنها کاری که کردیم بود که همه چیزو نادیده بگیره رفتار آدم کوچولوها چندان جالب نبود و فایده هم نداشت اما قابل درک بود پیدا کردن پنیر کار آسونی نبود و برای آدم کوچولوها ارزشی فراتر از غذا برای خوراک هر روزه داشت پیدا کردن پنیر برای آدم کوچولوها یعنی چیزی که فکر میکردن برای رسیدن به خوشبختی نیاز دارند. پنیر برای هر یک از اونها بسته به نوع نگاه و سلیغشون مفهوم خاصی داشت برای برخی پیدا کردن پنیر مسئله مادی بود برای دیگران به معنای از سلامتی یا داشتن حس معنوی رفاه بود برای اون پا پنیر صرفاً به معنای سالم بودن امید به تشکیل خانواده پرمحبت و زندگی در کلبه دنج و راحت در محله چدار بود پنیر در ذهن این پا کم کم اون رو تبدیل به حاکم بزرگ کرده بود که دیگران رو تحت سلطه می گرفت و به معنای داشتن خانهی در بالای تپهی کامانبر بود. از اونجا که پنیر برای آدم کوچولوها خیلی مهم بود، مدتها طور کشید تا تصمیم بگیرن که چه باید بکنن. تمام کاری که می تونستن بکنن این بود که اطراف جایگاه بی پنیر رو نگاه کنن تا ببینند آیا واقعا پنیر از دست رفته یا نه. در حالی که فینفین و تکاپو به سرعت پیش می‌رفتند این پا و اون پا همچنان این پا و اون پا می‌کردند به خاطر این بی‌عدالتی که در حقشون روا شده بود داد را انداختند اون پا داشت افسورده میشد او بر اساس این پنیر برای آینده خود نقشه ها کشیده بود آدم کوچولوها نمی‌تونستان این اتفاقو باور کنن آخه چطور چنین چیزی ممکن بود کسی از قبل به اونا هشدار نداده بود این درست نبود، این چیزی نبود که انتظارشو داشتند. این پا و اون پا اون شب گرسنه و دل سرد به خونه رفتن اما قبل از رفتن اون پا روی دیوار نوشت اگه فردان پنیر سر جاش نباشه چی؟ هرچقدر پنیر شما برایتان مهمتر باشد، هوایش را بیشتر خواهید داشت روز بعد این پا و اون پا از خونه بیرون اومدن و دوباره به جایگاه پنیر برگشتن جایی که هنوز کمابیش انتظار داشتند پنیر خودشون رو در اون پیدا کنن چیزی عوض نشده بود بازم خبری از پنیر نبود این پا و اون پا بی حرکت مثل مجسمه ایستادند و تماشا کردند اون پا چشماش رو تا جایی که میتونست محکم بست و دستاش رو روی گوشاش گذاشت او تنها میخواست همه چیز رو از ذهن خود بیرون کنه اون نمیخواست بفهمه که آزوغه پنیرشون روز به روز کمتر و کمتر میشده. اون فکر میکرد که پنیر به یک بار ناپدید شده بود. واو! این پا این وضعیت رو بارها و بارها تجزیه و تحلیل کرد و سرانجام مغز اون با اون نظام وسیع باورها کنترل کنترول رو به دست گرفت. پرسید؟ چرا اونا با من این کارو کردن؟ اصلاً چه اتفاقی داره اینجا میفته؟ اونپا اون پا سرانجام چشمای خودشو باز کرد، نگاهی به بر انداخت و گفت راستی، فینفین و تکاپو کجا؟ به نظر تو اونا چیزی می دونن که ما نمی اینپا این پا پوزخندی زد و گفت هم. چی بدونن؟ اونا دوتا موشک بیشتر نیستن اونا فقط به اتفاقایی که می واکنشتشون واکنش نشون می ما آدم کچولوییم خیلی از اونا باهوشتریم ما باید از این قضیه سر در بیاریم درسته که ما باهوشتریم اما ظاهراً الان ما خیلی هم حوشمندانه رفتار نمی کنی. این پا شرایط بر ما داره تغییر می شاید ما هم باید تغییر کنیم و یه جور دیگه عمل کنیم ما چرا باید حوستیم؟ ما آدم کچولوییم ما خواستیم نباید همچین اتفاقی واسه ما بیفته یا اگر بیفته ما باید حداقل یه نفعی ازش ببریم چرا باید یه نفعی ازش ببریم؟ چون که این حقمونه چی حقمونه؟ پنیرمون، اون پنیر حق ماست چرا؟ چون ما این مشکل رو به بوتوز نیوردیم یکی دیگه این کارو کرده ما هم باید یه چیزی ازش در بیاریم دیگه بهتر نیست این همه تجزیه تحلیل شرایط بذاریم بذاریم کنار رو بریم دنبال یه پنیر جدید بگردیم؟ نه نه من تا تو چوچه قضیه رو در نیرم دست بردار نیستم در حالی که این پا و اون اونپا هنوز داشتن تصمیم می گرفتن که چه کار کنن فینفین و تکاپو راه خودرو پیدا کرده بودن به عمق هزار تو می رفتن، دهلیز ها رو طی میکردن و در هر جایگاه پنیری که ممکن بود پنیری وجود داشته باشه پیون میگشتن اونها به هیچ چیز جز پیدا کردن پنیر جدید فکر نمیکردند. اونا تا مدتی چیزی پیدا نکردند تا اینکه به ای از هزار تو رسیدن که پیش از این هرگز به اون پا نگذاشته بودند. پنجمین جایگاه پنیر. جیغی از سر لذت کشیدند. اونها چیزی رو که مدتها به دنبالش بودند یافتند. اندوختهی بزرگ از پنیر جدید. اونا به سختی میتونستن اونچه رو که به چشم می دیدن باور کنند. این بزرگترین اندخته پنیری بود که تا اون زمان به خود دیده بودند. در همین هنگام این پا و اون پا هنوز در سومین جایگاه پنیر مونده بودند و داشتن شرایط رو ارزیابی میکردند اونها حالا داشتن از تأثیر نداشتن پنیر رنج می ناامید و عصبانی شده بودند و همدیگر رو به خاطر وضعیتی که در آن قرار داشتند سرزنش میکردند. اونپا پا گاه به فکر دوستان و موش خود فینفین فین و تکاپو میافتاد و نمیدونست که آیا اونها تا اون موقع پنیری پیدا کردن یا نه میدونست که اونها هم میبایست روزگار سختی رو گذرونده باشن چون دویدن در میون اون هزار تو همیشه تردیدها و بلا تکلیفی هایی با خود داشت اما این رو هم میدونست که این ماجرا چندان به طول نخواهد انجامید اون پا گاهی فینفین فین و تکاپو رو تصور میکرد که پنیر جدید رو پیدا کرده و دارن از اون لذت میبرن با خود میاندیشید که چه خوب میشد اگه اون هم دل رو به دریای هزار تو میزد و پنیر جدید رو پیدا میکرد. اون حتی طعم اون رو هم در ذهن خود احساس میکرد. هر قدر که تصور یافتن و خوردن پنیر براش روشنتر و حقیقیتر میشد، برای بیرون اومدن از سومین جایگاه پنیر مشتاقتر میشد. پاشا بریم. من از اینجا خوشم میاد. اینجا راحتم. این یکی مطمئنم. تازه. بیرون از اینجا خیلی خطرناکتره نه اصلا اینجوری نیست ما خیلی از جاهای این هزارتو رو قبلا گشتیم دوباره هم میتونیم این کار تکرار کنیم من دیگه واسه این کار پیر شدم هیچ علاقه به گم شدن و من کردن خودم ندارم تو چی؟ اینطوری شد که ترس از شکست دوباره به سراغ اونپا اومد و امیدش برای پیدا کردن پنیر جدید به یاس مبدل شد بنابراین آدم کوچولوها هر روز به همون کارهای قبلی خودشون ادامه میدادند. به سومین جایگاه پنیر میرفند پنیر رو پیدا نمیکردند و دست خالی با تمام نگرانی ها و ناامیدی های خودشون به خونه برمیگشتند. اونها تلاش میکردند اتفاقاتی رو که رخ میداد نادیده بگیرن، اما می دیدن که خوابیدن براشون سختتر شده و توان کمتری برای روز بعد در خود احساس میکنن و روز به روز کج خلق‌تر و زود زودرنج‌تر میشن خونه هاشون دیگه مثل اون زمان پربرکت نبود آدم کوچولوها دیگه خواب راحت نداشتن و هر شب کابوس پیدا نکردن پنیر رو میدیدن اما این پا و اون پا هر روز باز به سومین جایگاه پنیر میرفتن و همونجا منتظر میموندن میدونی اگه ما بیشتر تلاش کنیم میفهمیم که اوزا در واقع خیلی هم تغییر نکرده. احتمالا پنیر همین نستیکی است. شاید هم پشت دیوار قایمیش کرده باشن. روز بعد اینپا و اونپا با قلم و چکش برگشتند. اینپا قلم رو نگه داشته بود و اونپا هم با چکش ضربه میزد تا اینکه حفه‌ای در دیوار جایگاه پنیر ایجاد شد. اونها نگاهی به داخل حفره انداختن اما از پنیر خبری نبود نامید شدند، اما ایمان داشتند که میتونن مسئله رو حل کنن بنابراین این بار زودتر شروع کردن بیشتر موندن و سختتر تلاش کردن اما پس از مدتی تنها کاری که انجام داده بودن ایجاد سوراخی بزرگ در دل دیوار بود اونپا کم کم داشت فرق بین تلاش و بازدهی رو میفهمید این پا گفت شاید ما باید اینجا بشیم بشیریم و ببینیم چی میشه تیر یا زوجونا پنیر رو برمیگردنن و سر جش میذارن اون پا خیلی داشت این حرفا رو باور کنه بنابراین اون هر روز برای استراحت به خونه میرفت و با بیمیلی همراه این پا به جایگاه پنیر برمیگشت اما دیگه هر از پنیر خبری نشد آدم کچولوها روز به روز از گرسنگی و استراب ضعیفتر میشدند اون پا داشت از اینکه تنها منتظر بهتر شدن اوضا بشینه خسته میشد. او کم کم داشت به این نتیجه می رسید که هرچه بیشتر در این جایگاه پنیر بمونه وضعشون بدتر میشه. اونپا اون پا میدونست که اونها دارن همه چیز رو از دست می دن سرانجام یک روز اون پا شروع کرد به خندیدن به خودش یه <تصفح> نگاهی به خودمون بندست ما داریم هر روز یه کار هی تکرار میکنیم و میگیم چرا وضعیت بهتر نمیشه اگه اوضاع اینقدر مسخره نبود خنده دارترم میشد اونپا پیشنهاد دویدن دوباره در میان هزارتو رو قبول نداشت چون میدونست که گم میشه و نمیدونست که از کجا میتونه پنی رو پیدا کنه اما وقتی دید که ترسش داره با اون چی کار میکنه چاره جز خندیدن به حماقت خودش نداشت کفش کجا گذاشتیم؟ خیلی طول کشید تا کفششونو پیدا کنن چون از وقتی که اونها پنیر خودشون رو در جایگاه پنیر پیدا کردن همه چیز رو کنار گذاشته بودن چون فکر میکردن که دیگه هرگز به اونها نیازی نخواهند داشت این پا وقتی دید دوستش داره برای رفتن آماده میشه گفت تو که نمیخوای زباده بری چی اون هزار تو میخوای؟ چرا همینجا بیشه من منتظر نمیمونی تو اونا جاش. چند تا اینو نمیفهمی همین منم هم نمیخواستم بفهمم اما حالا میدونم که اونا نمیخوان پنیر دیروزی رو برگردونن وقتشه که پنیر جدید رو پیدا کنیم اما اگه بیرونم پنیری نباشه چی از گیرم چه باشه اگه نتونی پیداش کنی چی نمیدونم پرسش هایی رو بارها و بارها از خودش پرسیده بود و احساس میکرد این ترس باز هم اون رو در همین ای که حالا هست نگه میداره کجا احتمالش بیشتره که پنی رو پیدا کنم؟ اینجا یا توی هزارتو؟ اون تصویری رو در ذهن خودش ترسیم کرد اون خودش رو در حالی که با لبخندی بر لب داخل هزارتو در حال جست جوست تصور کرد با اینکه این تصور اون رو شگفت زده کرده بود اما احساس خوبی هم به اون بخشیده بود. خودشو میدید که گهگاه در هزارتو گم میشه، اما اطمینان داشت که سرانجام پنیر جدید رو جایی اون بیرون پیدا میکنه و تمام خوشیها هم با اون خواهد اومد به خودش روحیه میداد. سپس سعی کرد با استفاده از تخیل خودش با ترین تصویر ممکن رو ترسیم کنه. با دقیقترین جزئیات تصویری از خودش که پنیر جدید رو یافته بود و داشت از طعم خوش اون لذت میبرد. رو میدید که داشت پنیر سوئیسی رو با اون سوراخهایی که روی اون هست میخوره. پنیر چدار با اون رنگ نارنجی روشن، پنیر آمریکایی، پنیر ایتالیایی و اون پنیر فوق نرم فرانسوی. بعد صدای اینپا رو شنید که داشت چیزی میگفت. به خودم او مدوددید که هنوز هم در همون جایگاه پنیر هستند. این پا بعضی وقتا یه چیزایی تغییر میکنه دیگه هیچ وقت به حالت اولش بر نمیگرده ظاهرا الان یکی از اون وقتست زندگی یعنی همین زندگی داره پیش میره پس ماام باید حرکت کنیم اون پا به همدم تکده خودش نگاه کرد و سعی کرد اون رو سر عقل بیاره اما ترس این پا به خش مبددر شد و گوش نمیداد. اون پا نمیخواست به دوست خودش بی احترا کنه. از طرفیم نمیتونست به حماقت خودش و اون نخنده. اون پا همچنان که آماده رفتن میشد کم کم احساس نشات می کرد. چون میدونست که بالاخره تونسته به خودش بخنده خودشو رها کنه و به پیش بره. اون پا خندید و اعلام کرد؟ <تصفيق> حالا، وقت رفتن به هزار توه؟ این پا نخندید و جوابی هم نداد اون پا سنگ کوچیک و نکتیزی رو برداشت و مطلب بسیار مهم و سازی رو بروی دیوار نوشت تا این پا کمی به اون فکر کنه اون پا طبق معمول حتی عکسی از پنیر دور این جمله کشید به این امید که بتونه لبخند رو بر لبهای این پا بنشونه اون رو سر شوق بیاره و برای پیدا کردن پنیر راهی کنه اما این پا نمیخواست اون رو ببینه. اگر تغییر نکنی، در خطر نابودی قرار خواهی گرفت. بعد اون پا سرش رو بیرون برد و نگاهی نگران به درون هزارتو انداخت. به این فکر می کرد که چطور خودش رو اسیر این بیپنیری کرده. اون باور کرده بود که در هزارتو تو پنیری وجود نداره یا اینکه اگرم باشه، اون اون رو پیدا نخواهد کرد. این باورهای وحشتناک داشت رمغ اون رو می گرفت و اون رو از پا در می آورد. اون پا لبخند زد میدونست که این پا داره از خودش میپرسه؟ کی پنیر برده؟ اما اون پا داشت از خودش میپرسید. چرا زودتر پا نشدم دنبال پنیر برم؟ اونپا تا پاش رو به هزار تو گذاشت به پشت سر خودش نگاه کرد تا ببینه از کجا اومده و خیالش راحت شد احساس میکرد داره به سمت سرزمین آشنای خود کشیده میشه با اینکه مدتها در اون پنیری پیدا نکرده بود. اون پا نگرانیش بیشتر شد و نمیدونست که آیا واقعاً میخواد پا به هزار تو بگذاره یا نه. جمله ای رو بروی دیوار پیش روی خود نوشت و مدتی به اون خیره شد. اگر نیترسیدی چه کار میکردید؟ به این جمله فکر کرد. میدونست که گاهی کمی ترس هم بد نیست. وقتی از این بترسی که اگه کاری نکنی اوضا بدتر میشه چنین ترسی میتونه تو رو به کار وادار کنه ولی اگه اونقدر بترسی که نتونی کاری از پیش ببری ترس اصلا چیز خوبی نیست به سمت راست خودش نگاه کرد به بخشی از هزارتو تو که تا اون زمان نرفته بود و ترس رو احساس کرد سپس نفس عمیقی کشید از سمت راست به هزارتو پا گذاشت و به آرومی پیش رفت به منطقه ناشناخته قدم گذاشت. اون پا همچنان که تلاش میکرد تا راه خودش رو پیدا کنه در ابتدا نگران بود. نگران اینکه شاید بیش از حد در جایگاه پنیر منتظر مونده، اونقدر بیپنیری کشیده بود که حالا این همه ضعیف شده بود. حالا دیگه پیشرفتن در میان این هزار تو طولانی تر از معمول شده بود تصمیم گرفت که اگه دوباره چنین موقعیتی پیش اومد زودتر از جای گرم و نرم خودش بیرون بیاد و آغوش خودش رو به روی تغییر باز کنه. اینطوری همه چیز راحتتر میشد. وقتی داشت به این چیزها فکر می کرد، اون پا لبخند کمرمغی بر روی نشست و با خود گفت دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه. در طول چند روز بعد اون پا در گوشه و کنار پنیر کوچکی پیدا کرد. اما چیزی نبود که بتونه خیلی با اون سر کنه. دلش میخواست اونقدر پنیر پیدا کنه که کمی هم برای این پا ببره تا اون رو هم تشویق کنه که به هزارتو بیاد. اما هنوز چندان خاطرجام نبود. باید اعتراف میکرد که هزارتو خیلی گیجش کرده. به نظر میرسید از آخرین باری که پا به اینجا گذاشته، خیلی چیزها تغییر کرده. درست وقتی که فکر میکرد داره خوب پیش میره، در دهلیزهای هزارتو گم میشد. انگار پیشرفت های اون دو گام به جلو و یک گام به عقب بود. سخت بود اما خودش هم قبول داشت که بازگشتش به هزار تو و جستجوی پنیر اونقدرها هم که از اون میتأسید بد نیست. زمانی که میگذشت اون کم کم از خودش میپرسید آیا اصلا عاقلانه است که انتظار پنیر جدید رو داشته باشه؟ با خودش میگفت شاید لقمه بزرگتر از دهنش برداشته. بعد خندش گرفت. چون میدید فعلا که اصلا لقمه‌ای در کار نیست. هر وقت که میدید داره کم کم دل سرد میشه، به خودش نهیب میزد که این کار اون با تمام سختی هایی که داشت خیلی بهتر از موندن در اون وضعیت بیپنیریه اون به جای اینکه فقط منتظر بمونه ببینه که چه بر سرش میاد، داشت کنترل اوضاع رو در دست میگرفت. بعد به خودش یاداوری میکرد که اگه فینفین و تکاپو تونستن پیش برن، پس اون هم میتونه بعدها وقتی که اون پا گذشته رو مرور میکرد، میدید که برخلاف اونچه پیش از این تصور میکرد، پنیرها در جایگاه پنیر یک شب ناپدید نشدن. پنیرهای اونجا به تدریج کم و کمتر شده بودن و اونچه که به جا مونده بود هم به تدریج که شده بود و دیگه مزه خوبی نداشت. پنیر که حتی شاید شروع به کپک زدن هم کرده بود و اون متوجه اون نشده بود. به هر حال اون باید قبول می کرد که اگه می خواست شاید می تونست اتفاقاتی رو که داشت رخ میداد ببینه، اما نخواسته بود. حالا دیگه اون پا می دونست که اگه متوجه سیر اتفاقات می شد و انتظار تغییرات رو داشت، این همه از تغییرات پیش اومده قافلگیر نمی شود. شاید این همون کاری بود که فینفین و تکاپو انجام داده بودن. تصمیم گرفت از این به بعد بیشتر حواسش رو جمع کنه. اون حالا دیگه انتظار تغییرات آتی رو داشت و خودش هم به دنبال اون بود. به غرایز بنیادی خودش اعتماد می تا متوجه تغییراتی که قرار بود رخ بده بشه و خودش رو برای پذیرش اونها آماده کنه. ایستاد تا کمی استراحت کنه و این جمله رو بروی دیوار هزار تو نوشت. همیشه پنی را بکن تا متوجه کهنه شدن آن بشوی اون پا وقتی بعد از مدتی که به نظرش خیلی طولانی هم میومد پنیر رو پیدا نکرد در نهایت به پنیر جای پهناوری رسید که آینده روشنی رو به اون نوید میداد. داد هرچند وقتی وارد اون شد و اون رو خالی دید شدیدا ناامید و سرخورده شد با خودش فکر کرد این احساس پوچی دست از سرم ور نمی داره احساس می کرد دیگه نمی تونه ادامه بده دیگه داشت از پا می افتاد. میدونست گم شده و از این میترسید که راه نجاتی هم نمونده باشه فکر کرد دور بزنه و به پنیجای اول برگرده حداقلش این بود که اگه برمیگشت و این پا هنوز هم اونجا بود دیگه تنها نمیموند بعد دوباره همون سؤال رو از خود پرسید اگه نمیترسیدم چی میشد؟ فکر میکرد کرد بشت سر گذاشته اما اونقدر ترسیده بود که نمیخواست به اون اذعان کنه حتی پیش خودش. پیش از اینها هیچ وقت نمیدونست که از چه چیزی میترسه اما حالا با این ضعف و درماندگی میدونست که از تنهایی ادامه دادن میترسه اون پا این ترس رو نمیشناخت اما داشت پا پس میکشید چون باورهای ترسناک اون هنوز مثل زنجیر به پاش پیچیده بود نمیدونست که آیا این پا هم به راه افتاده یا اینکه هنوز هم تحت تاثیر ترس هاش توان انجام هیچ کاری رو نداره اون پا سپس به یاد اون روزی افتاد که بهترین احساس عمرش رو در هزار تو داشت همون زمان که داشت حرکت می کرد و پیش می رفت. چیزی روی دیوار نوشت می دونست که این جمله ها هم یاداوری های خوبی برای اون هستن و هم نشانه برای دوستش این پا که امیدوار بود اون به آنها عمل کنه اون جمله این بود حرکت در مسیبی جدید کمکت می کند تا پنیر جدید را پیدا کنید. اون پا نگاهی به گذرگاه تاریک انداخت. از ترس خودش خبر داشت. چه چیزی پیش روش قرار داشت؟ آیا خالی بود؟ یا از اون بدتر آیا خطری در کمین اون بود؟ در ذهن خودش تمام چیزهای خطرناکی رو که ممکن بود برای اون رخ بده رو تصور کرد. تا سرحد مرگ می ترسید. بعد به خودش خندید. فهمید که ترسای اون همه چیز رو بدتر میکنه پس همون کاری رو کرد که اگه نمی ترسید انجام میداد گام در مسیر جدیدی گذاشت. همچنان که داشت در دهلیز تاریک می لبخند زد. اون پا هنوز نمی دونست چی پیدا کرده. اما داشت به چیزی می رسید که روح اون رو سیراب می کرد خود رو رها کرده و به اون که پیش روش قرار داشت اعتماد کرده بود، هرچند اصلا نمیدونست که دقیقا چه چیزی انتظار اون رو میکشه. اونپا با کمال تعجب میدید که هرچی میگذره لذت بیشتری احساس میکنه. با تعجب از خود پرسید، چرا اینقدر حالم خوبه؟ من که هیچ پنیری پیدا نکردم، اصلا نمیدونم کجا دارم میرم، توری نکشید که دلیل این احساس خوب رو فهمید. دوباره ایستاد تا چیزی روی دیوار بنویسه. اگر ترست را کنار بگذاری احساس خوبی پیدا خواهی کرد. فهمید که تا به حال اسیر ترس خودش بوده. حرکت در مسیر جدید اون رو آزاد کرده بود. حالا خونکاگ نسیمی رو احساس می کرد که به این نقطه از هزار تو و روح اون رو تازه می کرد. چند نفس عمیق کشید و احساس کرد که حرکت به اون نیرو بخشیده از وقتی ترسش رو کنار گذاشته بود به چشم دید که زندگی خیلی لذت بخشتر از اونیه که فکرش رو می کرد مدتها بود که چنین احساسی رو تجربه نکرده بود تقریبا فراموش کرده بود که جستجو کردن چقدر لذت بخشه و بهتر از اون اینکه اون پا دوباره تصفیری و در ذهن خودش ترسیم کرد خودش رو با تمام جزئیات در حالی که در میان تلی از پنیر مورد علاقش نشسته بود میدید. از چدار گرفته تا بری. خودش رو در حال خوردن اون همه پنیری که دوست داشت میدید و از اون چه میدید لذت می برد. خودش رو تصور کرد که چقدر از اون همه تعم شگفتنگیز لذت میبره. هرچقدر تصورش از لذت بردن از پنیر جدید رو واضحتر میدید براش واقعی تر و باور کردنی تر می شود. احساس می کرد که دیگه باید اون رو پیدا کنه نوشت تصور این که داری از پنیر جدید لذت می تو را به سمت آن خواهد برد اون پا حالا داشت به چیزهایی فکر می کرد که می تونه به دست بیاره نه اون چیزهایی که از دست داده بود مونده بود که چرا همیشه فکر میکرده که تغییرات عاقبت خوبی برای اون نخواهد داشت. حالا فهمیده بود که تغییرات میتونه به اتفاقات بهتری منجر بشه. چرا قبلا به این نرسیده بودم؟ سپس با قدرت و چالاکی بسیار بیشتری شروع به دویدن در هزارتو کرد. طولی نکشید که چشمش به یک پنیر جا افتاد و وقتی تهکه های کوچک پنیر جدید رو در نزدیکی در ورودی اون دید، سر از پا نمیشناخت. این تکه ها از انواع پنیری بودند که پیش از اون هرگز ندیده بود اما به نظر می رسید عالی باشن اونها رو امتحان کرد و دید که بسیار خوشمزن اون بیشتر تکه های پنیر جدیدی رو که اونجا قرار داشت و خورد و مقداری و هم در جیبش ریخت تا بعدا بخوره و یه شاید میخواست اونها رو با این پا تقسیم کنه داشت کم کم توان خودش رو باز می آفت. با شوق و حیجان وارد پنیرجا شد. اما در کمال اندوه دید که اونجا خالیه یکی پیش از اون به اونجا رسیده بود و فقط چند تکه از پنیر جدید رو به جا گذاشته بود فهمید که اگه زودتر رسیده بود به احتمال زیاد مقدار بسیار زیادی از پنیر جدید رو در اونجا میدید. اون پا تصمیم گرفت به خونه برگرده و ببینه که آیا این پا حاضره به اون ملحق بشه یا نه همچنان که داشت از اون راهی که اومده بود برمیگشت ایستاد و بر روی دیوار نوشت هرچقدر سریتر به توانی خود را از قید پنیر قدیمی رها کنی پنیر جدید را زودتر پیدا خواهی کرد اون پا پس از مدتی به پنیرجای جای په برگشت و این پا رو پیدا کرد های پنیر جدید و به اون تعارف کرد اما اون دستشو پس زد این پا از این لطف دوستش تشکر کرد اما اون گفت ازت از ممنونم اون پا فکر نکنم علاقه ای به پنیر جدید داشته باشم من به اینا عادت ندارم دلم میخواد پنیر خودم رو به این پس بدن تا به اون چیزی که میخوام نرسم عوض نمیشم اون پا سرش رو با ناامیدی تکون داد و با ناراحتی تنها برگشت وقتی به دورترین نقطه ای از هزار تو که قبلا به اون رسیده بود برگشت دلش برای دوستش تنگ شد اما دید اون چرا که در حال یافتن اونه خیلی دوست داره. حتی پیش از پیدا کردن اون چیزی که آرزو می کرد بزرگی از پنیر جدید باشه میدونست که اونچه اون رو خوشحال میکنه فقط داشتن پنیر نیست. وقتی اسیر ترس خود نبود خوشحال بود. اون حالا کاری که داشت انجام میداد رو دوست داشت. و با علم به این مطلب دیگه مثل اون زمان که در پنیر جای په بدون پنیر مونده بود احساس ضعف نمیکرد. تنها فهمیدن اینکه دیگه نمیگذاره تر صد راهش بشه و دونستن اینکه مسیر جدیدی رو برگزیده به اون توان و قدرت میبخشید. حالا احساس میکرد پیش از اون که اون چرا میخواد پیدا کنه مسئله زمان براش مهمه. در واقع میدونست اون چرا که میخواد پیش از این یافته بود. لبخند زد. وقتی که فهمید جستیجو در هزار تو بهتر و مطمئنتر از ماندن در وضعیت بی پنیری است اون پا باز هم به این نتیجه رسید که اون چه از اون میترسی هرگز به بدی اون چه که تصورش رو میکنی نیست ترسی که تو اجازه میدی در ذهنت شکل بگیره بدتر از اون وضعیتیه که واقعا وجود داره اون اونقدر نگران پیدا نکردن پنیر جدید بود که حتی نمیخواست دنبال اون بگرده اما از وقتی سفر خودش رو آغاز کرده بود، اونقدر پنیر در دهلیس ها پیدا کرده بود که بتونه به جستجوهاش ادامه بده. حالا مشتاقانه در پی یافتن پنیر بیشتری بود. افکار گذشتش همیشه آمیخته با ترس ها و نگرانیها بوده. اون عادت داشت همیشه به نداشتن پنیر کافی یا اصلا نداشتن اون فکر کنه. اون همیشه به اتفاقات بدی که ممکن بود پیش بیاد فکر میکرد، نه به اتفاقات خوب. اما از وقتی که پنیر جای په پرو ترک کرده بود افکارش هم تغییر کرده بود. اون وقتا اعتقاد داشت که پنیر نباید از اونجا تکون بخوره و تغییر را هم قبول نداشت. حالا فهمیده بود که پیش اومدن تغییرات مداوم امری طبیعیه. چه انتظار اون رو داشته باشی چه نداشته باشی. وقتی دید تونسته باورهای خودش رو تغییر بده، ایستاد تا بر روی دیوار بنویسه: افکار کهنه تو را به پنیر جدید نمی‌رساند. اون پا هنوز هم هیچ پنیری پیدا نکرده بود، ولی وقتی داشت در هزار تو می به چیزهایی فکر میکرد که یاد گرفته بود. اون پا حالا میدونست که باورهای جدیدش برای اون رفتارهای جدیدی رو به ارمغان آورده. رفتار اون حالا خیلی با اون وقتی که مدام به همون پنیرجای بی پنیر میرفت، تفاوت داشت. میدونست که وقتی باورها تو تغییر بدی، عمل هم تغییر میکنه. میتونی باور داشته باشی که یک تغییر به ضرر توه و در برابرش بیستی؟ یا میتونی باور داشته باشی که یافتن پنیر جدید به نفع توه و آغوش خودت رو به روی تغییر باز کنی؟ همه اینها به این بستگی داره که تو تصمیم بگیری کدوم رو انتخاب کنی؟ وقتی میبینی که میتوانی پنیر جدید را پیدا کنی و از آن لذت ببری مسیر خود را عوض کن. اون میدونست است که اگه زودتر از اینها به فکر تغییر افتاده بود و از پنیر جای پ زودتر دلکنده بود حالا وضع بهتری داشت. حالا توان جسمی و روحی بیشتری رو احساس می‌کرد و بهتر می‌تونست از پس مشکلاتی که در پیدا کردن پنیر جدید داشت بر بیاد. در واقع اگه انتظار تغییرات رو داشت به جای اینکه وقت خودش رو با انکار تغییراتی که قبلا رخ داده بود تلف کنه، شاید تا حالا پنیر رو پیدا کرده بود. دوباره از تخیل خودش استفاده کرد و خودش رو تصور کرد که پنیر جدید رو پیدا کرده و داره با لذت تموم اون رو میخوره. تصمیم گرفت به نقاط ناشناخته بیشتری از هزار تو گام بگذاره و در گوشه و کنار تکیهای های کوچکی از پنیر رو هم پیدا کرد. داشت کم کم توان و اعتماد به نفس خودش رو باز میافد. اون پا وقتی به گذشته و جایی که از اون اومده فکر میکرد، خوشحال بود که خیلی جاها بر روی دیوار چیزهایی رو نوشته. اعتقاد داشت که اگه این پا تصمیم بگیره در نهایت پنیجای په رو ترک کنه، این نوشته به اون کمک میکنه که راه خودش رو در هزارتو پیدا کنه. اون پا فقط امیدوار بود که اون در مسیر درست گام داره. به این فکر میکرد که احتمال داره این پا دستنوشته های روی دیوار رو بخونه و بتونه از این طریق راه خودش رو پیدا کنه. جملهای رو بر روی دیوار نوشت که مدتها فکر اون رو به خود مشغول کرده بود. اگر زود متوجه تغییرات کوچک شدی بهتر خواهی توانست خود را با تغییرات بزرگی که در راه است تطبیق دهید. اون تا به حال تونسته بود خودش رو از بند گذشته رها کنه و داشت خودش رو با شرایط فعلی وفق میداد. راهش رو در میان هزارتو با قدرت و سرعت بسیار بیشتری ادامه داد و طوری نکشید که اون اتفاقی که باید میافتاد افتاد. در حالی که به نظر می رسید اون عمری رو در هزارتو گذرونده سفر اون یا لااقل بخشی از سفر اون خیلی زود و با خوشی به اتمام رسید. اون پا در طول دهلیزی که براش جدید بود پیش رفت از یک پیچ گذشت و پنیر جدید رو در پنیرجای جه پیدا کرد وقتی وارد پنیرجا شد از اون چه پیش چشمش بود حیرت زده شد همه جا پر بود از بزرگترین اندخته پنیری که تا اون مقدیده بود اون همه اون پنیرها رو نمی شناخت برخی از انواع پنیرهایی که اونجا بود برای اون تازهی داشت بعد یه لحظه تردید کرد که آیا همه اینهایی که میبینه واقعیه یا فقط زایده ی توهمات اونه تا اینکه دوستان قدیمی خودش فینفین و تکاپو را دید سلام فینفین با دادن سر به اون پا خوش آمد گفت <صحنت> <صحنت> خوش اومدی اون <صحنت> ممنونم خیلی خوشحالم که حالتون خوبه و تکاپو هم پنجه های خودش رو داد. بله <صحنت> <صحنت> <تصفيق> هی، چطوری؟ <چیه> <تصف> سلام، تا میخوایی؟ بیا، بیا و چاق اونها نشون میداد که مدت زیادی رو در اونجا گذروندن اون پا کفشاشو از پا در ورد، بندهای اونها رو به هم گره زد و دور گردنش انداخت تا هر وقت به اونها نیاز داشت در دسترسش باشن فینفین و تکاپو خندیدن و سرشون رو به نشانه تحسین تکون دادن سپس اونپا به سمت پنیر جدید خیز برداشت وقتی که حسابی دلی از عزادرا آورد ای از پنیر تازه رو برداشت و اونپا گفت زنده با تغییر اونپا همچنان که داشت از خوردن پنیر تازه لذت میبرد به چیزهایی که آموخته بود فکر می کرد فهمیده بود اون زمانی که از تغییر می‌ترسیده اصیل توهم پنیر قدیمی بوده که دیگه اثری از اون در اونجا نبوده اما چه چیزی باعث شده بود که اون تغییر کنه؟ ترس از گرسنگی مردن؟ اون پا لبخند زد. چون میدونست که این ترس قطعا بی تأثیر نبوده. بعد خندید و فهمید که درست از اون زمان که یاد گرفته بود به خودش و اشتباهات به بخنده، متغیر شدن رو شروع کرده بود. فهمیده بود که سریعترین راه برای متغیر شدن، خندیدن به حماقت‌های خودشه. اون زمانه که میتونی رها بشی و با سرعت به جلو گام برداری. فهمید که از دوستان موش خود فینفین و تکاپو چیزهای مفیدی راجب حرکت کردن یاد گرفته. اونها زندگی رو خیلی سخت نمی گرفتن. اونها مسائل رو بیش از حد تجزیه و تحلیل نمی کردن و بیش از اندازه هم اون رو پیچیده نمی کردن. از وقتی که عوض عوض شد و پنی رو بردن، اونها هم عوض شدند و با پنیر رفتند. این رو هرگز از یاد نمیبره اون همچنین از مغز شیرفتنگیز خودش استفاده کرده بود تا کاری انجام بده که آدم کوچولوها بهتر از موشها میتونن انجام بدن خودش رو تصور کرد با تمام جزئیات که داشت چیزی بهتر رو پیدا میکرد چیزی خیلی بهتر به اشتباه در گذشته انجام داده بود فکر کرد و از اونها استفاده کرد تا برای آگندهش برنامه ریزی کنه میدونست که کنار اومدن با تغییرات رو میشی یاد گرفت میتونیم از نیاز به ساده گرفتن مسائل آگاهی بیشتری پیدا کنیم از نیاز به انعطاف پذیر بودن و سریعتر حرکت کردن نیازی نیست که مسائل رو بیش از حد پیچیده کنی یا خودت رو درگیر افکار وحشتناک کنی میتونی متوجه شروع تغییرات کوچیک بشی تا بهتر بتونی خودت رو برای تغییرات بزرگی که در راهه آماده کنی. اون میدونست که باید خودش رو سریع‌تر با شرایط وفق بده چون اگه به موقع این کارو نکنه ممکنه دیگه هرگز نتونه باید میپذیرفت که بزرگترین مانع تغییر در درون خود فرد نهفته است و تا اون تغییر نکنه هیچ چیز بهتر نخواهد شد و شاید مهمتر از همه این که اون فهمید همیشه جای اون بیرون پنیر جدیدی هست خواه به موقع تشخیص بدی خواه نه و اینکه اگه ترس‌های خودت رو کنار بگذاری، دل به دریا بزنی و از ماجراجویی لذت ببری، پاداش اون رو هم می‌بینی. میدونست که نباید از کنار بعضی از ترس‌ها بی‌اتنا گذشت، چون میتونن تو رو از خطر واقعی دور نگه دارن. اما اون فهمیده بود که بیشتر ترس‌های اون منطقی نبوده و اون رو از تغییر درست در زمانی که به اون نیاز داشت، دور نگه داشته بود. اون موقع به تغییر روی خوش نشون نمیداد. اما حالا میدونست دونست که این تغییر برای اون توفیق اجباری بوده، چون باعث شده بود که اون پنیل جدید رو پیدا کنه. اون حتی بخش مهمتری از وجود خودش رو یافته بود. اون پا همچنان که داشت آموزههای خودش رو یاد می آورد، به دوست خودش این پا هم فکر می کرد. نمی دونست که آیا این پا هیچ از اون جملههایی رو که اون برای دیوار پنیر په و تمام طول هزار تو نوشته بود خونده یا نه. آیا اصلا پا به هزار هزارتو گذاشته تا بتونه اون چیزی رو که میتونه زندگیش رو بهتر کنه پیدا کنه یا اینکه هنوز هم خودش رو در گوشه زندانی کرده چون نمیخواسته تن به تغییر بده فکر کرد که به پنیرجای پی برگرده تا ببینه آیا میتونه این پا رو پیدا کنه یا نه البته اگه میتونست راه بازگشت خودش به اونجا رو پیدا کنه فکر میکرد اگه این پا رو پیدا کنه شاید بتونه به اون نشون بده که چطور خودش رو از این مخمس رها کنه اما یادش اومد که قبلا هم تلاش کرده بود تا دوستش رو برای تغییر کردن متقاعد کنه. این پان ناچار بود خودش راه خود رو پیدا کنه و رای راحتی ها و دور از ترس های خود. کس دیگه نمیتونه این کار رو برای اون انجام بده یا اینکه با حرف زدن اون رو قانه کنه. اون باید به طریقی مزیت های تغییر خودش رو به چشم ببینه. اون پا میدونست که برای این پا نشانه هایی به جا گذاشته و اون میتونه راه خودش رو پیدا کنه البته اگه دست نوشته های روی دیوار رو بخونه رفت و روی دیوار چهیده از اونچه رو که آموخته بود بر روی بزرگترین دیوار پنی جای جه نوشت بعد تصویری از یک تکه پنیر بزرگ دور تمام نگرش های خود کشید و وقتی که به اونچه که یاد گرفته بود نگاه کرد لبخندی بر لبانش نشست. تغییر روخ می دهد. آنها مدام پنیر را میبرند انتظار تغییر را داشته باش آماده گم شدن پنیر باش تغییرات را زیر نظر داشته باش همیشه پنیر را بوکن تا از کهنی شدن آن با خبر شدید. خودت را خیلی زود با تغییرات وفق بده هر چه زودتر خود را از قید پنیر کهنه رها کنی زودتر از پنیر جدید برخرد خواهی شد تغییر کن با پنیر حرکت کن از تغییر لذت ببر از رایحه ماجراها و تعم خوش پنیر جدید لذت ببر آماده باش که زود تغییر کنی و بارها و بارها از آن لذت ببری آنها مدام پنیر را می برند. اون پدید از اون زمان که با این پا در پنیر جای په بوده تا به حال چقدر راه پیموده تا به اینجا رسیده اما خیلی راحت به گذشته خواهد لغزید اگه بخواد تن به راحت طلبی بده بنابراین اون هر روز پنیر جای جه رو به دقت زیر نظر می تا ببینه که شرایط پنیرش چگونه شده اون میخواست تمام تلاش خودش رو بکنه تا این بار با یک تغییر غیرمنتظره قفلگیر نشه. اون پا با اینکه اندخته فراوانی از پنیر داشت، اما اغلب به هزار تو میرفت و نقاط جدیدی رو جستجو میکرد تا از اتفاقات دوروبر خودش قفل نمونه. میدونست که اگه از انتخابای واقعی خودش آگاه باشه خیالش راحتتره تا اینکه خودش رو در گوشی دنج خودش محبوس کنه. بعد اون پا، صدای جوشی شنید که فکر میکرد از داخل هزار تو به گوشش خورده صدا که بلندتر شد فهمید که کسی داره به اونجا میاد آیا این این پا بود که داشت میومد؟ او بود که داشت از پیچ جاده میگذشت؟ دعایی کرد و امیدوار موند مثل تمام اون گذشته ها که شاید سرانجام دوستش تونسته باشه با پنیر حرکت کن و از آن لذت ببر. وقتی داستان داستانو به انتها رسوند، نگاهی به دور تا دور اتاق انداخت و دید که هم کلاسی های سابقش دارن به اون میخندن چند نفر از اون از اون تشکر کردن و گفتن که این داستان حرفای زیادی برای اونا داشته. نظرتون چیه که بعداً دور هم جمع بشیم و اگه بشه در موردش صحبت کنیم؟ اکثر بچه‌ها دوست داشتند که در مورد این داستان با هم حرف بزنن. بنابراین قرار گذاشتن که قبل از شام دوباره هم رو ببینن. اون روز عصر وقتی اونها در سالن انتظار هتل هم جمع شدن شروع کردن به شوخی کردن با یکدیگر درباره اینکه پنیرشون پیدا کردن و خودشونو در هزار تو دیدن. سپس آنجلا با لحنی سمیمان از بقیه بچه ها پرسید: خب، شما کدوم یکی از شخصیت‌های قصه بودین؟ فین فین، تکاپو، این پای اون پا. خب من امروز ظهر به این موضوع فکر کردم. دقیقا اون دوره قبل از شروع کارم یعنی تجارت کالاهای ورزشی یادم اومد. همون موقع بود که من بد جوری با تغییرات مواجه شدم. من فینفین فین نبودم، وضعیت رو بو نکشیدم و خیلی زود با تغییرات روبرو شدم. اون چیزی که مسلمه اینه که من تکاپو هم نبودم، چون بلافاصله فاصله دست به کار نشدم. بیشتر شبیه این پا بودم که میخواست توی همون جایی که بهش ات کرده بود بمونه حقیقت اینه که من نمیخواستم با تغییرات کنار بیام حتی نمیخواستم باهاش روبروشم. بروشم. مایکیکل که احساس میکرد انگار همین دیروز بود که اونو کارلوس در مدرسه دوستان صمیمی هم بودند پرسید. داری در مورد چی میزنی رفیق؟ یه تغییر شغل غیرمنتظره. اخراج شدی؟ خب باید بگم من نمیخواستم برم دنبال پنیر جدید بگردم. فکر میکردم میدونم چرا تغییرات سراغ من نمیان. در نتیجه اون موقع خیلی داغون شدم. بعضی از همکلاسیای اون که تا حالا ساکت مونده بودن احساس کردن که حالا راحتتر میتونن وارد بحث بشن و صداشونو بالاتر بردن. یکی از اونها فرانک بود که وارد ارتش شده این قضیه منو یاد یکی از دوستام انداخت. واحدشون داشت منحل میشد، اما اون نمیخواست شاهد این اتفاق باشه. اونا دائما کارمداشون رو جابجا میکردن. همون سعی کردیم بهش بفهمونیم که توی اون شرکت برای کسایی که میخوان انعطاف پذیر باشن، موقعیت زیادی هست اما اون اصلا به این فکر نمیکرد که مجبور تغییر کنه. وقتی واحدشون تعطیل شد، اون تنها کسی بود که قافل گیر شده بود. اون الان شرایط سختی رو میگذرونه، چون مجبور خودشو با تغییراتی که انتظارشون نداشته فق بده. منم فکر نمی کردم این اتفاق واسم بیفته. اما پنیر منم بردن. اونم نه یه بار، مخصوصاً تو زندگی شخصی که بعدن بهش میرسیم. خیلی از بچه ها خندیدن، اما ناتان نخندید. شاید نکته همینجا باشه. تغییرات برای همه ما اتفاق میفته. کاش که خانواده من زودتر از این داستان پنیرا شنیده بودن. متأسفانه ما نخواستیم با تغییراتی که داشت کارمون پیش میومد روبرو بشیم. حالا هم دیگه خیلی دیر شده. ما داریم خیلی از فروشگاهمون رو تعطیل کنیم. این عرف اون خیلی از بچه ها رو قافل گیر کرد. چون اونا فکر میکردن ناتان خیلی خوش شانسه که کارش امنیت شغلی داره و اون می تونه روی اون حساب کنه. سالهای سال؟ مگه چی شده بود؟ وقتی فروشگاه بزرگ با جننس زیاد و قیمت کمشون توی شهر پا گرفتن فروشگاه کوچیک زنجیره ما یه دفعه از مد افتاد ما که نمیتونستیم با اونها رقابت کنیم. حالا میفهمم ما به جایی اینکه شبیه فین فین و تکاپو باشیم، داشتیم مثل این پا رفتار می‌کردیم. موندیم سر جای اولمون و عوض نشدیم. سعی کردیم چشممون رو روی اتفاقایی که داشت می‌افتاد ببندیم و حالا همه توی دردسر افتادیم. میتونستیم دو تا درس از اون پا یاد بگیریم. چون که ما مسلماً نمیتونستیم به خودمون بخندیم و عملکرد خودمون رو تغییر بدیم. لورا که در کار تجارت‌زن موفقی شده بود، تمام این حرفا رو شنیده بود. ولی تا به حال خیلی کم حرف زده بود گفت: منم امروز بعد از ظهر به این داستان فکر کردم مونده بودم که چجوری میتونم مثل اون پا باشم و اشتباهات خودم خودمو ببینم به خودم بخندم تغییر کنم و بهتر کار کنم من خیلی مشتاقم بدونم چند نفر از شما از تغییر کردن میترسن اما کسی جواب نداد بنابراین گفت چطور دستاتون دستاتونو بالا ببرین؟ خب، ظاهرا فقط یه آدم صادق تو جمع ما هست شاید از این سال بعدیم بیشتر خوشتون بیاد چند نفر از شما فکر میکنین که بقیه مردم از تغییر کردن میترسن تقریبا همه دستاشونو بالا بردن بعد همه شروع کردن به خندیدن خب، این یعنی چی؟ یعنی انکار دقیقا، بعضی وقتا حتی من نمیدونیم که میترسیم منم نمیدونستم وقتی برای اولین بار این داستان داستانو شنیدم از این سوال خیلی خوشم اومد اگه نمیترسیدی ترسیدی چه کار میکردی خب چیزی که من از این داستان فهمیدم اینه که تغییرات همه جا رخ میده و اینکه اگه من سری خودم رو باهاش وفق بدم میتونم بهتر عمل کنم یادم میاد خیلی سال پیش شرکتمون داشت دایره رو به عنوان یه مجموعه حدوداً 20 جلدی میفروخت یه نفر هی میخواست بهمون به بگه که ما باید کل دایره المعارف و روی یه دونه سیدی بریزیم و اونو با قیمت کمتر بفروشیم اینجوری به روزرسانیشم راحت تر بود تولیدش هزینه خیلی کمتری داشت و خیلی از مردم خریدش خریدشو داشتن اما ما هممون مخالفت کردیم چرا مخالفت کردیم؟ چون ما اعتقاد داشتیم که استخونبندی تجارت ما تعداد زیاد فروشنده های سیانمونن. حفظ این فروشنده ها بستگی به پورسانتایی داشت که به خاطر قیمت بالای محصولات ما می گرفتن. این برنامه خیلی وقت بود که داشت خوب جواب میداد و ما فکر می کردیم همیشه هم همین جور می شاید هم منظور داستان از غرور موفقیت این پا و اون پا همین باشه. اونا متوجه نبودن که باید چیزی رو که یه زمانی خوب بوده و جواب میداده تغییر بدن. آره، و میخواستیم دو دستی بهش بچسبیم. وقتی به گذشته و اتفاقاتی که برامون افتاده فکر میکنم می بینم فقط این نبوده که اونا پنیر رو بردن بلکه اون پنیر یه دوره مخصوص خودشو داشت که بالاخره به سر اومد. به هر حال ما تغییر نکردیم اما رقبا تغییر کردن و فروش ما شدیداً افت کرد. ما داشتیم به سمت یه شرایط سخت پیش می حالا هم یه تغییر تکنولوژی بزرگ داره توی صنعت و حرفه ما اتفاق می و کسی توی این شرکت حاضر نیست یه کاری بکنه. به نظر نمیاد این خیلی خوب باشه. فکر کنم منم به زودی شغلم و از دست بدم. پس شما فکر کردین پنیر قدیمیتون تنها پنیرتونه کارلوس با صدای بلند گفت وقت، وقت هزار توه همه خندیدن، جسیکا هم خندید کارلوس روچت به جسیکا و گفت خیلی خوبه که میتونی به خودت بخندی این همون چیزیه که من از داستان فهمیدم من معمولا خیلی جدیم حالا فهمیدم که اون پا وقتی عوض شد که بالاخره تونست به خودش و کارای خودش بخنده بیخود نبود به انگلیسی بهش می ها بچه ها که متوجه بازی آشکار با کلمات شده بودند خندیدند. <تصفيق> آ فکر میکنید این پا بالاخره تونست عوض بشه و پنیر جدید رو پیدا کنه؟ فکر نکنم بعضی زیادما هیچ وقت عوض نمیشن.تابوانشم میدن. من آدمایی مثل این پا رو توی حرفه پزشکی پزشکیم زیاد دیدم. اونا فکر میکنن پنیرشون حق مسلمشونه وقتی از دستش میدن احساس میکنن قربانین و همه ی تقصیرها رو میندازن گردن بقیه اونا بیشتر از کسایی که خودشون رو از قید و بند رها میکنن و بی جلو حرکت میکنن دچار مشکل میشن دست خودم نیست اما همش فکر میکنم اگه ما همه ی اون فروشگاه قدیمی مونا فروخته بودیم و یه فروشگاه بزرگ و مدرن ساخته بودیم که میتونست با بهترین فروشگاه رقابت کنه الان اینجا نبودیم شایدن منظور اونپا از اون جمله از ماجراجویی لذت ببر و با پنیر حرکت کن که روی دیوار نوشت همین بوده من فکر میکنم بعضی چیزا نباید تغییر کنن مثلا من دلم نمیخواد از اصول خودم دست بکشم اما الان میدونم که اگه تو زندگیم یکم زودتر فقط یکم با پنیر حرکت کرده بودم الان خیلی وضعیت بهتری داشتم خب مایکل داستان کوتاه و قشنگی بود اما تو واقعا چطوری تونستی ازش توی شرکتتون استفاده کنی؟ بچه هنوز خبر نداشتند. اما خود ریچاردم داشت تغییراتی رو تجربه میکرد تازه از همسرش جدا شده بود و داشت تلاش میکرد تا بین کار خود و بزرگ کردن بچه های نوجوون خودش تعادلی برقرار کنه. من فکر می کردم شغل من فقط مدیریت کردن مشکلاتیه که برای آدم پیش میاد در صورتی که من باید آینده نگری میکردم و تمام توجه معطوف به آینده میکردم. خب منم اون مشکلات و مدیریت کردم 24 ساعته اخلاق خیلی خوبی نداشتم افتاده بودم تو کوران رقابت رو نمیتونستم بیام بیرون خب تو داشتی فقط مدیریت میکردی در صورتی که اون موقع باید خودتو جلو مینداختی دقیقا بعدش که داستان کی منو جابجا کرده رو شنیدم فهمیدم که کار من ترسیم تصویری از پنیر جدید بوده که همه ای ما میخواستیم بهش برسیم. اون وقت میتونستیم از تغییر و موفقیت لذت ببریم چه توی کار باشه چه توی زندگی؟ درباره کار چیکار کردی؟ خب وقتی از کارمنده شرکتمون پرسیدم که اونا کدوم که از شخصیت های این داستانن دیدم که ما هر چهار تا شخصیت داستان رو تو شرکتمون داریم به این نتیجه رسیدم که باید با هر کدوم از فین ها و تکابو ها و اینپا ها و متفاوت برخورد کرد. فینفینای ما باید تغییرات بازار و بو اینجوری میتونستن کمک کنن تا چشمنداز شرکت رو به روز کنیم. اونا تشویق شدند که بفهمن چه تغییرات میتونه منجر به ارائه محصولات جدید و خدمات مورد نظر مشتری بشه. فینفینا خیلی خوششون اومد و گفتن از کار کردن توی جایی که تغییرات رو رصد میکنه و خودشو به موقع با شرایط تطبیق میده لذت میبرن. تکوپوهای ما خیلی دوست داشتن که کارا را انجام بدن بنابراین تشویق شدن که بر اساس چشمنداز جدید شرکت وارد عمل بشن فقط باید به کارشون نظارت میشد تا به بیراهه نرن بعدش به خاطر عملکرد خوبشون که نتیجهشم شد پنیر جدید پاداش گرفتن اونا خیلی راضی بودن که دارن توی شرکتی کار میکنن که برای فعالیت و نتیجه کار ارزش زیادی قائله این پاها و... اون پاهای شرکتتون چی؟ متاسفانه این مثل لنگر کشتی سرعتمونو رو گرفتن. هم خیلی راحت طلب بودن، هم از تغییرات میترسیدن. بعضی از این پاهای ما فقط وقتی متغیر می که چشمانداز منطقهی رو که ما ترسیم کرده بودیم ببینن. چشماندازی که نشون میداد متغیر شدن براشون چه مزایایی داره. این ما ما به بهمون میگفتن میخوان جایی کار کنند که امنیت داشته باشند بنابراین تغییرات باید طوری می بود که از نظر اونا منطقی باشه و احساس امنیتشون امنیتشونو بیشتر کنه وقتی متوجه خطرات عدم تغییر شدن بعضیاشون تغییر کردن و موفق شدن اون چشمندست کمک کرد تا ما خیلی از این اینپهامون رو تبدیل به اونپا کنیم با اون اینپ که خودشونو تغییر ندادن چیکار کردین مجبور شدیم مرخصشون کنیم ما می‌خواستیم همه کارمندامون رو حفظ کنیم اما اینو میدونستیم که اگه بلافاصله خودمون رو متغیر نکنیم دچار مشکل میشیم. خبر خوب بود که با اینکه اون‌پاهای ما هنوز تردید داشتن ولی اونقدر عاقل بودن که چیزای جدید رو یاد بگیرن عملکردشون رو تغییر بدن و به موقع خودشون رو تطبیق بدن و به موفقیت ما کمک کنن اینطوری شد که اونا دیگه انتظار تغییر رو داشتن و فعالانه هم به دنبالش بودن چون فطرت آدمو میشناختن کمک کردن یه چشمنداز واقعگرایانه از پنیر جدید تقسیم کنیم که تقریبا برای همه قابل قبول باشه. اونا میگفتن میخوان توی شرکتی کار کنن که به کارمنداش هم اعتماد به نفس بده و هم ابزار تغییر. اونا کمک کردن که وقتی دنبال پنیر جدید هستیم شوخ طبعی خودمون رو حفظ کنیم. یعنی تو این همه چیز از این داستان کوتاه یاد گرفتی؟ فقط داستان نبود. بلکه رفتار متفاوتمون بر اساس چیزایی بود که از این داستان متوجه شدیم من یه جیره شبیه این پام به خاطر همین واسه من تحصیل گذار بخش داستان اون بخشی بود که اون پا به ترس خودش خندید و تصمیم گرفت از خودش تصویری توی ذهنش بسازه که توی اون خودشو در حال لذت بردن از پنیر جدید میدید این کارش باعث شد رفتن به هزار تو براش ترس کمتر و لذت بیشتری داشته باشه. بلاخرم به هدفش رسید. این همون کاریه که من بیشتر دوست دارم انجام بدم. پس این پاها هم میتونن بعضی وقتا فواید تغییر رو ببینن ها؟ <laughs> مثل فواید حفظ شغلشون. یا حتی گرفتن یه ترفیه خوب. ریچارد که در تمام طول این گفتگو اخم کرده بود گفت. رئیسمون همیشه به من میگه شرکتمون باید متغیر بشه فکر کنم منظورش اینه که من باید متغیر بشم اما من هیچ وقت نمیخواستم بشنوم. به نظرم من هیچ وقت واقعا نمیدونستم اون پنیر جدیدی که اون میخواد ما رو به سمتش ببره چیه یا اینکه اصلاً اصلا به چه درد من میخوره ریچارد در حالی که تبسمی به لب داشت گفت باید اعتراف کنم که من این ایده دیدن پنیر جدید و تصور کردن خودت در حال لذت بردن از اونو خیلی دوست دارم. اینجوری همه کارا راحت میشه. وقتی ببینی که چجوری میشه همه چیز رو بهتر کرد، بیشتر علاقهمند میشه میشی که تغییر رو به وجود بیاری. شاید بتونم ازش توی زندگی شخصیم استفاده کنم. به نظرم بچه هام فکر میکنن هیچ چیز توی زندگیشون نباید تغییر کنه. فکر کنم اونا دارن مثل این پا میکنن. اونا عصبانی و ناراحتان شاید از آینده میترسن شاید من یه تصویر دقیق و واقعی از پنیر جدید براشون ترسیم نکردم شاید چون خودمم اونو نمیبینم ها ساکت بودند و چند نفر از اونا هم داشتن به زندگی خودشون فکر می‌کردن خب بیشتر این بچه ها در مورد کار صحبت کردند ولی من وقتی داشتم به داستان گوش میکردم به زندگی شخصی خودم هم فکر می‌کردم فکر می کنم رابطه فعلی من مثل همون پنیر کوهنه که بد جوری کپک زده <تصفيق> منم همینطور شاید لازمه که از این رابطه بعد فاصله بگیریم یا شاید پنیر کهنه همون رفتارای کوهنه ما باشه اون چیزی که ما در واقع باید خودمونو ازش جدا کنیم رفتارایی که باعث روابط بد ما میشن و بعدش بریم به سمت طرز تفکر بهتر و عمل کرده بهتر آها نکته همین جاست. پنیر جدید یعنی رابطه جدید با همون فرد من کم کم دارم به این نتیجه میرسم که یه چیزی بیشتر از اون چیزی که من فکر میکردم توی این قصه هست من ایده فاصله گرفتن از رفتارهای قدیمی رو بیشتر از کنار گذاشتن اون رابطه دوست دارم. تکرار یه رفتار نتیجه جدیدی به ما نمیده. در مورد کار هم باید بگم که شاید به جای تغییر شغل باید شیوه انجام کار عوض کنم. شاید اگه این کار رو کرده بودم، الان وضع بهتری داشتم. بعد بکی که در شهر دیگه زندگی می کرد و برای این تجدید دیدار به اینجا آمده بود. گفت. من وقتی داشتم به این داستان و نظرات بچه ها گوش می کردم، مجبور شدم به خودم بخندم. من مدت شبیه این پا بودم. سرگردون و بلا تکریف و از تغییرم خیلی می ترسیدم. نمی دونستم که بقیه مردمم هم خیلی همین وضعیت را دارند. متاسفانه بدون اینکه بدونم این ترس و به بچه ها من منتقل کرده بودم. وقتی بهش فکر کردم، فهمیدم که تغییر واقعا میتونه آدم به جاهای جدیدتر و بهتری برسونه. حتی اگه در اون لحظه فکر کنیم که اصلاً امکانش وجود نداره. یادم اون زمان پسرمون سال دوم دبیرستان بود. شغل شوهرم ایجاب میکرد که ما از ایلینویز به ورمونت بریم. پسرمون خیلی ناراحت بود چون مجبور بود از دوستاش جدا بشه. اون توی مدرسهشون قهرمان شنا شده بود و ورمونت اصلاً تیم شنا نداشت. بنابراین خیلی از دست ما بود که داریم با خودمون میبریمش. بعدش فهمیدیم که اون آشق کوهای ورمونت شده. رفت سراغ ورزش اسکی و عضو تیم دانشکتشون شد. حالا هم توی کلورادا زندگی میکنه و خیلی هم از زندگیش راضیه. من برسم خونه این داستان و باسه خانوادم تعریف میکنم از بچه ها میپرسم که به نظرشون من کیم؟ فین فین؟ تکاپو؟ این پا یا اون پا؟ و فکر میکنن خودشون کدومن میتونیم در این مورد حرف بزنیم که به نظرمون پنیر که اونه اون خانواده ما چیه؟ و پنیر جدیدمون چی چی میتونه باشه؟ ریچارد گفت فکر خوبیه و با این حرفش همه رو حتی خودشو قافلگیر کرد بعد فرانچ گفت من که می‌خوام شبیه اون پا باشم و با پنیر برم و ازش لذت ببرم. میخوام این داستانو واسه اون رفیقام که نگران بیرون اومدن از ارتش بودن تعریف کنم و ببینم نظرشون در این مورد چیه. میتونه موضوع جالبی برای حرف زدن باشه. مایکل گفت خب اینجوری شد که ما شرایط کاریمونو ارتقا دادیم. ما چند تا بحث داشتیم راجع اینکه چه چیزایی از این داستان پنیر میشه درآورد و اینکه چطور میتونیم ازش در موقعیت خودمون استفاده کنیم. خیلی خوب بود چون ما ادبیاتی رو به کار بردیم که باهاش به شکل جالبی شیوه های برخورد و تغییر رو بحث کردیم. خیلی موثر بود. مخصوصا وقتی که توی شرکتمون گسترش عمیق پیدا کرد. منظورت از عمیق چیه؟ خب وقتی که به شرکتمون با دقت بیشتری نگاه کردیم، آدمای ای رو هم دیدیم که احساس می‌کردن توان زیادی ندارن. معلوم بود از نتیجه تغییراتی که از بالا بهشون تحمیل می‌شد می‌ترسیدن. در نتیجه در برابر تغییرات مقاومت می‌کردند. خلاصه اینکه هر تغییری که تحمیل بشه، مقاومت در برابرش شکل میگیره. اما وقتی داستان پنیر رو تقریباً با همه توی شرکت در میون گذاشتیم، تونستیم نوع نگرش به تغییر رو تغییر بدیم. این باعث شد که همه به ترسای کهنه خودشون بخندن یا حداقل لبخند بزنن و بخوان که حرکت کنن. فقط کاش که این داستان رو زودتر از اینا شنیده بودم. چرا؟ چون ما تازه وقتی تصمیم به تغییرات گرفتیم که کارابارمون جوری زمین خورده بود ما مجبور شدیم خیلی از کارمندامون رو مرخص کنیم که همون جور که قبلا هم گفته بودم بعضی از دوستای خوب خودم هم جزوشون بودن واسه هممون سخت بود به هر حال هم اونایی که موندن و هم بیشتر اونایی که رفتن میگفتن که این داستان پنیر خیلی کمکشون کرده تا مسائل رو بهتر ببینن و بهتر از عهده مشکلاتشون بر اونایی که مجبور شدن برن و دنبال یه شغل جدید بگردن میگفتن که اولش خیلی براشون سخت بوده اما یادآوری این داستان خیلی بهشون کمک کرده چی بیشتر کمکشون کرده بود بعد از اینکه ترسشون رو کنار گذاشتن به هم گفتن که بهترینش این بود که فهمیده بودن اون بیرون پنی جدیدی وجود داره که فقط منتظر تا بریم و پیداش کنیم گفتن که داشتن تصویری از پنیر جدید توی ذهنشون، دیدن موفقیت خودشون توی انجام کار احساس خیلی بهتری بهشون داده و کمکشون کرده که توی های شغلی موفقتر باشن. یه چند نفری هم شغل بهتری گیرشون اومده بود. اونا که توی شرکتتون موندگار شدن چی؟ خب به جای اینکه از تغییرات گلایه کنن، به قول خودشون میگفتن اونا که پنیر ما رو بردن باید به دنبال پنیر جدید بگردیم. هم توی زمان صرفه‌جویی شد و هم از استرس کم شد. فکر می کنی چرا اونا تغییر کردن؟ چیزی نگذش که همونایی که قبلا مقاومت میکردند، فواید تغییر رو به چشم دیدن. اونا حتی به ایجاد تغییر کمکم کردن. تو اکثر شرکتایی که تو توشون بودی وقتی تغییرات از طرف مدیریت اعلام میشه چه اتفاقی میفته؟ بیشترشون میگن که تغییر فکر خوبیه یا بد؟ میگن فکر خوبی نیست. چون مردم دلشون میخواد شرایط همونجور بمونه و فکر میکنن تغییرات به نفشون نیست وقتی یکی میگه تغییر فکر خوبی نیست بقیه هم همون رو میگم بعد از اینکه کارمندا داستان پنی و شنیدن شرای چهجوری عوض شد فشاری که از طرف کارمندا بود تغییر کرد دیگه کسی نمیخواست مثل این پا باشه اونا میخواستن تغییرات رو قبل از اینکه اتفاق بیفته بو بکشن و وارد عمل بشن نه اینکه گوشهگیر بشن و عقب بمونن این نکته خوبه کسی تو شرکت ما مثل این پا باشه. شاید هم حتی عوض بشم چرا این داستان تو ملاقات قبلیمون تعریف نکردی؟ شاید به درد میخورد؟ البته وقتی بیشتر به درد میخوره که همه آدمای شرکت داستانو بدونن چه یه شرکت بزرگ باشه چه یه کار کوچیک؟ یا خانواده؟ چون یه شرکت وقتی متغیر میشه که یه تعداد زیادی از کارمنداش تغییر کنن. وقتی دیدیم این داستان اینقدر خوب جواب داد اونو به کسایی که قرار بود باهاشون کار کنیم دادیم چون میدونستیم اونها هم با تغییر غریبه نیستن؟ ما بهشون پیشنهاد کردیم که میتونیم پنیر جدیدشون باشیم یعنی بهترین شریک موفقیتاشون این قضیه منجر شد به یک کسب و کار جدید این صحبت‌ها چند ایده جدید به جسیکا داد و یادش انداخت که صبح چند تماس کاری به منظور فروش داشته نگاهی به ساعتش انداخت و گفت خب وقتشه که این پنیرجا رو ترک کنم و برم یه پنیر جدید پیدا کنم همه خندیدن و با اون خدافیزی خیلی از اونا میخواستن را ادامه بدن اما باید میرفتن و قبل از رفتن بازم از مایکل تشکر کردن خیلی خوشحالم که این داستان این همه به دردتون خورده و امیدوارم فرصت داشته باشین که خیلی زود این داستان رو به بقیه هم بدن